نتیجه گیری دو های مشکل ساز در خلقیات ما ایرانیان آسمان ادبیات و فرهنگ ما پر از ستاره هایی است که چشمک می زنند پر است از ارزش های انسانی و معنوی اما زمین ما سنگلاخ ناامن پر تعارض و ناهموار است در جامعه ما رویای اخلاقی هست در زیر پوست این جامعه یک حس اخلاقی است میل به فضیلت هست، اما شرایط بیرونی ما چندان با آن رویاها و حسهای درونی همساز و همداستان نیست متن زیست ما و موقعیت‌های جغرافیایی و اجتماعی و سیاسی و مناسبات اقتصادی ما برای فضیلت مساعد نیست راستی و انصاف برای ایرانی حقیقتاً بسیار با ارزش و خواستنی و ستودنی است اما میدان بازی جلالود است بازی منصفانه در عمل دشوار می شود. خطری که در اینجا در کمین ما نشسته است و خطر کوچکی نیست آن است که به طور زمنی نتیجه بگیریم ارزش تابناک را فقط باید گذاشت در آسمان‌ها چشمک بزنند. ولی در زمین باید راه را در پیش گرفت و زرنگی کرد و تملق کرد و از هر نمدی کلاهی برای خیش دوخت، دروغ گفت و گلیم خود را از آب بیرون کشید و مابقی قضایه مقتضیه اگر بیشتر مردم یک چنین نتیجهی را ولو به طور زمنی بگیرند من اسم این را شکست اخلاقی جامعه می گذارم. مرادم شکست نهاد اخلاق است یعنی باورها و ارزشها و هنجارهایی که در طول تاریخ مردمان در زیست اجتماعی خود آثار اینی که آن را تجربه کردند و آزموده اند و از ترجیحات کلی آنها این ارزشها با عملکردهای تکرار شونده نهادینه شده اند و اعمال و رفتار متقابل اجتماعی مردم را از درون و بدون حزینه های پلیس و دادگستری و دولت و بروکراسی و معزه و مانند آن تنظیم می کنند و به صورت گرامر اجتماعی در می آیند. همانطور که اقتصاددانان نئوکلاسیک از شکست بازار به معنای آدم اسمیتی کلمه سخن میگویند یا همانطور که انگل هارت از شکست های مجری پروژه مدرنیزاسیون در بخشی از جوامع در حال توسعه از جمله در ایران سخن میگوید اجازه بدهید در چیزی هم به نام شکست اخلاق تأمل کنیم و آن وقتی است که گروه های اجتماعی به نتیجه برسند اخلاق خوب است و زیباست اما به درد نمی خورد و کارایی ندارد و در عمل نمی توان آن را به کار بست و چندان ای گرفت. این به معنای نابود شدن امید اخلاقی یک جامعه است و به گمان بنده در جامعه ایران چنین اتفاقی دور از تصور نیست. یکی از محققان جدی در باب خلقیات ایرانی با استفاده از نظریه بازیها ها بحث دراهی ها را پیش کشید است. تحقیقی که ایشان در تهران در اوایل دهه 80 بر محور دو منفعت فردی و منفعت جمعی انجام داده است نشان میدهد ما ایرانیان کارهایی در زندگی روزمره با دیگران میکنیم و خلقیاتی داریم که میدانیم خوب نیست ولی در دل میگوییم چاره‌ای جز آن نیست به عبارت دیگر زمین بازی ما پر از های میان فضیلت و بلاحت است یعنی از یک سو میل به فضیلت داریم و از سوی دیگر با این احساس درگیر هستیم که نکند در این میان ما مقبون شویم در همه جای دنیا اخلاقی بودن در سرشت خود همراه با تنشی است. وقتی کسی از ما کمک مالی میخواهد و خودمان هم آن پول را لازم داریم کمک کردن در اینجا مستلزم گذشت و بخشندگی است. ابتدا مقاومتی در سطح وجود خود احساس میکنیم ولی وقتی بر این مقاومت فائق می و به آن فرد کمک می کنیم، لذت و مسرت بخشندگی را تجربه می کنیم. اما اگر کسانی از ما پول میخواهند و ما هم بخشندگی را می ستاییم ولی یک تجربه پنهان تاریخی به ما بگوید، اینها میخواهند سر تو را کلاه بگذارند، اینجا ما در این دوراهی بازی های اجتماعی قرار می گیریم. این با آن تنش عمومی در اخلاق فرق دارد. در آنجا اخلاق با معناست ولی پرتنش است تنش‌های آن نیز معنادار است اما در اینجا اخلاق معنای خود را می‌بازد رانندگی ماشینی می‌خواهد از ما سبقت بگیرد و چراغ نوربالا روشن می‌کند و دوست داریم راه بدهیم برود اما اگر حسی می‌گوید اینها یکی دوتا نیستند عادت غالب در رانندگی ما هاست عموما می‌خواهند زرنگی بکنند و تو در این وسط بازنده خواهی ماند همه میروند و تو به موقع نمی توانی به مقصد برسی تو هم باید به جمع این زرنگ بپیوندی و گلیم خیش را از آب بیرون بکشی در این صورت ما دوچار یک دوراهی میان احساس اخلاقی و احساس قبن هستیم و برای همین است که به یک انتخاب اقلانی سطحی دست میزنیم و ما هم به خیل زرنگ ها و همانطور که در فصل پنجم کتاب بخش دوم نظریه بازی ها ملاحظه شد بازی دو زرنگ را بر بازی زرنگ کدن ترجیح می دهیم چرا که به طور زمنی به این نتیجه رسیده ایم که اگر قرار باشد بازی ای و بازی صادقانه و شفافی در پیش بگیری کلاحت پس مرکه است منظورم از شکست اخلاق و از فروپاشی امید اخلاقی این است خلقیات خوب اجتماعی در ایران بازی کردن در زمین گلالود است به تعبیر پروین، گفت مستی، زین سبب افتان و خیزان می روی، گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. اگر طرز راه رفتن ما و خلقیات ما مشکل دارد، به یک معنا گناه راه هاست، گناه نهادها و سیستم های ماست. در زمین بد، بازیکنان خوب هم کرخت می شوند و تمام حس و هنر و خلاقیتشان برهم می خورد. پس ما باید مقداری از بحث خلقیات اجتماعی را بکشیم به سمت نهادهای اجتماعی و های اقتصادی و سیاسی و ساختارهایمان. باتسون و همکاران در دهه 60 و 70 میلادی یعنی قبل از انقلاب درباره تیپهای ایدئال شخصیت ایرانی تحقیق کردند و مثال عالی کاراکتر ایرانی را چیزی دیدند که خود صفای باتن تعبیر کردند تیپ ایدال ایرانیان آنطور که باتسون و همکاران در قبل از انقلاب مشاهده و مطالعه کردند تیپ صوفی لوتی است صوفی به این معنا که زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد باشد و لوتی و ایار به معنایی که حس همنوایی و تیمارداری مردمان داشته باشد اما آیا شرایط اجازه چنین ایدئال هایی را در سطح عموم می داد؟ پاسخ نوع منفی است. از دو جهت. یکی شرایط پول بود و دیگر شرایط پر منازعه. در تاریخ ایران هم فقر شدید بود و هم منازعه بر سر منابع کمیاب بود. این دو جهت را مختصر توضیح می دهیم. نخست فقر و تنگ دستی مادی اجازه نمیداد دل و دماغ فرامادی به وجود بیاید. آرف که از دنیا چشم می پوشد. معمولاً باید قدری دلسیری از نیازهای مادی داشته باشد تا به فکر نیازهای روحی بیفتد کما اینکه خیلی از عارفان چنین بودند، دیده سیر و جان دلیر داشتند کسی که گرفتار فقر است و محرومیتهای مادی و کمبودهای فروخورده‌ی تسبیت شده دارد کمتر فرصت تمنای نیازهای فرامادی پیدا می کند همچنان که در نظریات عمومی روانشناسی و جامعه مثل مازلو و انگل هارت آمده است دوم شرایط پر تعارض اجتماعی ما بود موقعیت اجتماعی و زمینه های تاریخی پر از اسباب سوء تفاهم و تعارض بود این نیز اجازه عیاری و لوطی و همنوایی نمیداد بیشتر لوتی ها نیز ایاریشان آغشته به تعصبات میانگروهی و میان قبیلهای و امثال آن میشد و آن صفا و زلالی خود را از دست میداد آن انسان دوستی فراگیر فرصت ظهور به بدین ترتیب می‌بینیم مردمی که در ذهن و جان اغلب آنها تیپ ایدئال صوفی عیار دل میبرد در متن زندگی با وضعیت متفاوتی دست به گریبانند. صفای باطن را دوست دارند اما شرایط مقتضی حالات و اوصاف و افعال دیگری است. در اینجا می‌رسیم به اینکه کار ما از کمال‌گرایی اخلاقی به نفرت می‌کشد. چون اکثر مردم را و گاهی خود را نیز عملا خالی از کمالاتی می که رویای آن را داریم. اینجاست که اعتماد ما به کارایی اخلاق اجتماعی مختوش می‌شود. حافظ از قله های پرشکوه فرهنگ و ایرانی است و تیپ ایدعال او شخصیت‌هایی مثل رند است و پیر خرابات است. اما اکثر آنچه در محیط بیرونی می بیند زاهدان ظاهر پرستند. امور بر وفق مراد مردم نادان می رود، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس و رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس. در اینجا می بینید که آنچه می ماند بلاکشی و خوشباشی است و این نمیتواند یک تیپ اجتماعی کارامد پایداری در مقیاس عموم مردمان باشد. از سوی دیگر میبینید که ناگهان چه مرز مبهمی میان عشق و نفرت سر برمی آورد. کسی که تمنای عشق دارد و در دل خواهان آن است که دوست بدارد باید بنشیند و ناله کند و نفرت بورزد و از خیلی چیزهای چندش آور حکایت کند و از ریا و سالوس فراگیر بگوید. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. این یک پارادوکسی است که در چنین عشق ورزیدن ما لانه کرده است همخانگی دوست داشتن و دوست نداشتن یعنی فاصله وحشتناک میان انتظار اخلاقی بالا با امید اخلاقی پایین یعنی آن تیپ ایدئالی که در آسمان فرهنگ خیش میخواهیم در زندگی روزمره و پیرامون خیش نمیابیم این دوگانگی سازی در خلقیات ایرانی است و تنها با اصلاح و توسعه نهادها و قوانین و زمینه اجتماعی و با یادگیری گروهی و اجتماعی مداوم قابل رفع و رجوع است. جامعه ایران جامعه توفیق یرا و در این حال توفیق زدا است. همه خواستار توفیقات بلند و بالا هستیم و از خدا توفیق ادب می جوییم. اما موقعیت و زمینه ها و نیز ساختارها و سیستم های ما توفیق سوزند شرایط برای انسان ایرانی در کوچه و بازار به جای اینکه توفیق سازی بکند قالبا توفیق سوزی می کند. اگر سیستم ها توفیق ساز باشند آدمهایی با بهره هوشی متوسط می خلقیات خوبی از خود آشکار کنند اما وقتی سیستم ها توفیق زدایند و ما همچنان توفیق گراییم این یک دوگانگی دل سرد کننده می شود. در نتیجه شیخ نیز با چراغ باید گرد شهر بچرخد که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست و ما نیز بگوییم قبلا گشته ایم و یافته نمی شود و او پاسخ دهد آنکه یافت می نشود آنم آرزوست. با این سیکل های معیوب گرهی از خلقیات اجتماعی گشوده نمی شود. جامعه ایران باید به جای آنکه جامعه ای توفیق یرا و توفیق زدا باشد توفیق خواه و توفیق ساز باشد. توفق خواهی نیازمند کنش اخلاقی، یادگیری و توسعه شخصی است و توفیق سازی نیز مستلزم کنش اجتماعی به منظور تحول و توسعه نهادها و مدیریت کارآمد برای بهبود بخشیدن به شرایط عینی زندگی مردم است. پایان سخن در این کتاب از میان آن همه خلقیات خوب و بد و گوناگون ایرانیان تنها شواهد بحثنگیز برجسته شده است این کار فقط یک انتخاب مسئله شناختی است و به معنای آن نیست که ایرانیان در بره بره تاریخ خود احوال و افعال دیگر نداشتند مگر آنها نبودند که در تقسیم آب مشاع برای مزارع خیش سنت های همکاری بر جای گذاشتند چه کسانی با اقتباس و التقاط خلاق از فنون و دانش ملتهای مختلف تمدنی درخشان ساختند اگر این فرهنگ در برابر حوادث و یورش‌ها باقی ماند نشان از چه بود این موج معرفت و خیال که در ادبیات و هنر ایرانی برامده نشان از کدام مردم دارد این اخلاق پهلوانی اخلاق عیاری و عرفان متعلق به کیست که تسامح داشت عشق داشت، خدایش عشق بود، شفقت بر خلق می ورزید. مدارا و دیگر پذیری داشت، به دیگران و حتی به انسانهای گناهکار نفرت نداشت و سایر احوالات داشت. هم عشق مولانا را داشت و هم رندی و عشق حافظ را. چرا حافظ و اخلاق تنعم او نزد ایرانیان و در فرهنگ عمومی و زندگی روزمره آنها و عمق خانه نفوذ کرد؟ مردم ما هوشمندانه از رندی حافظ که مالامال از نقد زهد ریایی و تزویر و خلقیاتی از این قبیل بود استقبال کردند تا نشان دهند از چنین روحیاتی در سر و سویدای دل بیزارند این تحول جویی ها جنبش ها و پویش های معاصر از مشروطه و نهزت ملی و گرایش دلها به برابری و آزادی تا به امروز از کیست؟ پس اگر در این کتاب روی کردی خود انتقادی در پیش گرفته شده تنها یک تمرکز است. با این همه با خلقیات بحثانگیز که در ادوار مختلف تاریخ تا دوران معاصر برملا شده چه میتوان کرد؟ چنان که در کتاب ملاحظه کردید به گمان نویسنده پاسخ تنها دو کلمه است یادگیری و کنش مراد از یادگیری تنها یادگیری فردی نیست بلکه یادگیری گروهی، سازمانی و اجتماعی است. در سراسر مناسبتهای موضوعی کتاب دیدیم که خلقیات است. یاد یادگیری تغییر نسبتا پایدار در رفتار است به خصوص ملتی که سرمایه انسانی جوان و آموزش پذیر دارد آن هم در دنیایی تا این اندازه جهانی شده و مبتنی بر ارتباطات و اطلاعات و دانش، میتواند یاد بگیرد که طور دیگر ببیند و طور دیگر زندگی کند دیگر نمیتوان ذات باورانه از یک نیمروخ ثابت از رفتار و روحیات ایرانی دم زد یادگیری اجتماعی تنها از جنس شناخت نیست بلکه در آن عنصر عمل و پراکسیس هم وجود دارد از ره گذر کنش انتقادی و خرد ارتباطی الگوی زیست اجتماعی بهتری را مشق و تمریم می کنیم و می آموزیم. هر حلقهی که به وجود می آوریم، هر اجتماع محلی، هر نهاد مدنی و هر پویش درونزای جمعی و هر جنبش امیغ اجتماعی می تواند نقطه عظیمتی برای دانش بیشتر، بینش جرفتر و منش اجتماعی بهتر باشد. اصلاحات نهادی مانند نهاد دولت، آموزش و پرورش، مالکیت، مناسبات تولید و روابط کار مهمترین قدم برای ایجاد تحول در خلقیات است. رفتارهای تازه به نهادهای تازه نیاز دارند. فقط زیست نهادهایی مناسب هستند که می توانند الگوهای تازه زیست اجتماعی را تسهیل و بقای آنها را تضمین کنند. برای اینکه های جدید پایدار شوند و منجر به یادگیری تازه شوند نیازمند شرایط و لوازم نهادینهی هستند. آموزش و نیز مداخلات سیستمی مانند اصلاح قوانین و فرایندها می قواعد بازی انسانی را ارتقا بخشند. در اینجا باید شبکه در بازی را ببینیم و سامان دهیم. عمل رحای بخش و کنش انسانها می تواند را تغییر دهد. الگوها و های اندیشیدن با پراکسیس تغییر می کنند. با الگوهای رفتاری تازه و خرد فرهنگهای جدید کنشگران ممهای تازهی از خلقیات بشری را ترویج میدهند. دهند. روحیات و اخلاقیات اجتماعی تحول پذیر است و در آن امکان کنش، پویش و یادگیریهای تازه و دگرگونی وجود دارد. وقتی فرصهای پایه دانش و منطق پردازش علائم عوض شود، رفتار و هنجارها هم عوض می شود و فرهنگ رانندگی، فرهنگ سیاسی و فرهنگ کار ما عوض می شود. برای مثال، عبور از خدکشی یا توقف در برابر چراغ قرمز به الگوهای های و ادراکی تبدیل می شوند. مردم یاد میگیرند گفتگو کنند. زندگی کنند و بگذارند دیگران هم زندگی کنند با وجود عقاید آرا و سبک‌های زندگی مختلف همزیستی، همکنشی و همسخنی کنند یاد می‌گیرند در موارد اختلاف معدل دیدگاه های خود را مبنا قرار دهند و با هم توافق و اجماع کنند و روحیات کار جمعی سازنده به دست داورند ما نیازمند روی کردی شبکه ای و طرحی آهسته و پیوسته هستیم باید همه جانبه و شبکه ای نگاه کنیم و ترهی جرف و مشارکت جویانه و نه نخبه گرایانه بجوییم تغییر و تحول یک طرح گسترده است که به مشارکت فراوان مردم نیاز دارد همه باید در این طرح آهسته، پیوسته، همه جانبه و گسترده مشارکت کنند از طریق انباشت کنش هایی که معطوف به تغییر توان ساختار و رفتار است و از عملکردهای تکرار شونده این کنشها ساختارها تحول پیدا می کنند و پا به پای ساختارها رفتارها هم تغییر می کنند. تغییر پروژهی طولانی و همه جانبه است: پروژهی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، شهری، محل اجتماعی، آموزشی، فکری. بخشی و میان بخشی سرانجام داستان این نویسنده خام و چم داستان دلاکی است در گرمابه که به حکایت فریدالدین اتار در آخر منطق بر تن عارفی شوریده یعنی ابوسعید سعید خیر کیسه میکشید و چرک بدنش را از پشت او گرد میآورد و بر بازوانش توده میکرد و پیش چشمانش قرار میداد در همین اسنا دلاک از شیخ شوخ پرسید، جوانمردی چیست؟ و شیخ به تنز پاسخ داد، جوان شوخ پنهان کردن است. بوسعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاد و مردی خام بود. شوخ شیخ آورد تا بازوی او جمع کردن جمله پیش چشم او. شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جواب چه باشد در جهان؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است پیش چشم خلق ناآوردن است این جوابی بود بر بالای او قایم افتادان زمان در پای او چون به نادانی خیش اقرار کرد شیخ خوش شد قایم استخفار کرد خالقا پروردگارا منعما حادشاه ها کارساز و چون مردی خلق عالمی هست از دریای فضلت شب شوخی و بیشرمی ما درگزار، شوخ ما با پیش چشم ما میاه